طفحه 358 نزدیکی دو برادر با پادشاه روز به روز بیشتر شد و تا آنجا که هر کدام از آنها به نوبت همراه شاه به شکار می رفتند در یکی از این روزها که قرار بود برادر بزرگتر کرد فردای آن روز همراه شاه به شکار برود با برادر کوچکتر گفت بر... برادر همونطور که می ما یکدیگر را سمیمانه دوست داریم و هنوز هم زن اختیار نکرده ایم ولی من فکر میکنم کنم ما دو نفر باید با دو خواهر از خانوادی که شایسته مقام ما باشد در یک روز ازدواج کنیم و همسران در یک زمان باردار شوند و در یک روز هم فارغ شوند و خداوند به تو پسری دهد و به من هم دختری و بدین ترتیب پیوند دوستی ما تقویت خواهد یافت و در آینده هم فرزندان با یکدیگر ازدواج می کنند آیا تو این فکر را میپسندی؟ برادر پاسخ داد بسیار فکر ایست تردیدی ندارم که اینچنین ازدواجی مایه افزایش یگانگی بین ما دو خواهد بود اما برادر فکر نمی‌کنید چران این ازدواج واقع شود تو باید به عنوان اینکه فرزند من دختر است و دختر حق مهریه دارد یکی از املاکی خود را به نام او درآوری و سه هزار سکیه طلا هم به او ببخشید و علاوه بر آن سه پارچه ده شش هم به دخترم واگذار کنی و سه غلان هم همراه آن به دخترم ببخشید که در خدمت او باشند برادر کوچکتر پاسخ داد هیچ وجه با این قسمت از پیشنهادت موافق نیستم زیرا مگه نه آنکه ما هر دو برادر یکدیگر هستیم و از نظر مقام و پایه شغلی با هم برابریم تو می‌دانی مرد بر زن برتری دارد بنابراین تو باید مثهی قابل توجهی برای پسر من که بر دختر تو برتری دارد بدهی برادر بزرگتر که توجه نداشت برادر کوچکتر به شوخی و مزاح چنین سخنانی به او میگوید از سخنان برادر شدیدا ناراحت شد و گفت تو با این ازدواج قص تجارت داری نه تقویت خویشاوندی و برادری و از برادر سحت رنجید و گفت پسر نالایق تو شایستگی دختر من رو ندارد و تا که پسرت را بالاتر از دختر من میدانی معتقد به برابری نیستی و شخص عادلی نظر نمیایی. بنابراین همکار و همپایهٔ من در اداره امور کشور نیستی و پسر تو شایستگی دختر مرا نخواهد داشت. مشاجره بین دو برادر به آنجا کشید که شمسدین برادر بزرگتر که پدر دختر به حساب می آید و با تندی به نورالدین گفت اگر قرار نبود که فردا صبح همراه شاه به شکار بروم کیفر گستاخی تو را در رفتار با برادر بزرگترت را می دادم. من به هیچ حاضر نیستم این ازدواج صورت گیرد. این را گفت و به اتاق خود رفت. و برادر کوچکتر هم به اتاق خودش رفت. در حالی که هنوز دو برادر ازدواج نکرده و هنوز خداوند فرزندی به آنها نداده بود، تا اساسا گفتگو درباره شرایط مالی و مهریه در زمان ازدواج پیش آید. آن شب را تا صبح نورالدین علی از شدت ناراحتی و افکار پریشان نتوانست بخوابد و با خودش می‌اندیشید با کسی که تازه فکر و قضاوتش این چنین باشد، کار کردن مشکل خواهد بود و همینکه بامداد فرار اسید قاطری را از استاب خارج کرد و لوازم و اساس خود را با مقادیری تلاب و خوراکی و آزوقه روی قاطر بار کرد و به همه گفت که برای یک مسافرت دو یا سه روزه به خارج شهر می نورالدین علی به مقصد عربستان براه افتاد ولی بعد از مدتی قاطرش که از سنگینی بار، ورنج راه و حرارت آفتاب دیگر قادر به حرکت نبود از پادر آمد و خودش ناچار شد پای پیاده به سفر خود ادامه دهد. خوشبختان چاپاری که با اسب از آن صحرا عبور می کرد او را دید و به او رحم آورده و او را در پشت اسب خود سوار کرد و راه بسره را در پیش گرفت و همین که به بسره رسید نورالدین پیاده شد و به راه خود ادامه داد در این هنگام مرد باوقار و محترمی را دید که از دور میآمد و همه مردم به او احترام میکنند. او همی و فهمید که آن مرد وزیر پادشاه بسره است که در میان مردم میگردد. و سرکشی می که بداند اوضاع مملکت از چه قرار است وزیر همونطور که میگشت متوجه نوردین شد و از او پرسید تو کیستی و از کجا میایی. نورالدین علی نام خود را گفت و اضافه کرد اهل قاهره است و چون برادرش به او بیمهره کرده از برادر رنجیده و به قصد جهانگردی سرزمین خود را رها کرده و هرگز مایل نیست در شهر و دیار خود زندگی کند وزیر گفت ای جوان. نباید از روزگار انتظار خوبی و آسایش داشت تا هنوز جوانی و نمی دانی که هر کجا بروی شیوه ی روزگار بدین ونبال خواهد بود و همه اش رنج اندوه هست. اما من سعی می کنم که تو را آرامش دهم تا ناراحتیت را فراموش کنی. فعلا دنبال من بیا تا ببینم چه کار باید کرد. نورالدین دنبال وزیر براه افتاد وزیر به زودی دریافت که نورالدین علی جوان کاردان و شایسته است و رفته, رفته به او علاقه شد. تا آنکه که در یکی از روزها به او گفت ای جوان من سالهای پیری را میگذرانم و تا پایان عمرم زیاد باقی نمانده است دختری دارم بسیار زیبا که خاستگاران متعددی دارد ولی تقاضای همه آنها را برای ازدواج با دخترم رد کردم فکر می کنم که تو همسر شایسته برای او باشی و من هم خوشحالم که تو را به دامادی بر بنابراین تو را به حضور سلطان می برم و معرفی می کنم. تا اجازه ازدواج تو را از او بگیرم و تو را به جای خود به عنوان وزیر معرفی کنم و من بعد از ازدواج تو با دخترم املاق و اموال خود را به تو واگذار خواهم کرد نورالدین علی از او تشکر فراوان کرد و پای او را بوسید و گفت هرطور که وزیر مصلحت بداند من اطاعت خواهم کرد وزیر هم به رئیس تشریفات و های قصر خود دستور داد تا جشن بزرگی را برای عروسی دختر و دامادش ترتیب دهد و تالار بزرگ پذیراهی ها را آماده پذیراهی مهمانان سازد آنگاه وزیر، بزرگان و امیران کشور را در این مجلس دعوت کرد و هنگامی که همه بزرگان کشور در آنجا حاضر شدند، اعلام داشت: میخواهم مطلبی را که تا کنون از شما پنهان داشته بودم برایتان فاش کنم. من برادری دارم که او هم وزیر در دربار شاه مصر بود و این جوان که نامش نورالدین علیس برادرزاده من و یکی از دو فرزند برادرم است. به دامادی پذیرفتم او را به همین جهت تاکنون خاستگاری بزرگان این شهر را نپذیرفتم و امیدوارم که رفتار من موجب رنجش آقایان نگردیده باشد میهمانان که از سخنان وزیر کاملا خوشنود شده بودند همگی گفتند کار وزیر کاملا درست و عاقلانه بوده است و ما همه امیدواریم که این زنوشویی برای این دو جوان خوشبختی به همراه آورد و پایدار بماند اعیان بزرگان حاضر در جشن عروسی شاهد مراسم پیوند زنانشویی شدند و با امضای خود زنانشوی دختر وزیر را با نوردین علی گواهی و تایید نمودند و شام شاهانه سرف کردند و پذیرایی شایانی به عمل آمد و این جشن تا پاسی از شب ادامه داشت. پس از انجام مراسم نورالدین علی به گرما رو و سپس لباسهای گرامبه و زیبایی پوشید و با وقار و برازندگی بسیار نزد وزیر آمد. وزیر به او گفت من از شایستگی و تدبیر تو آگاهی کامل دارم اما از اختلاف تو با برادرت آگاهی نداشتم و میخواستم بدانم چه امری سبب رنجش تو از برادرت شده آنگاه نورتین علی توضیح کافی در این باره داد وزیر از شنیدن علت اختلاف خندش گرفت و گفت اختلاف نظر شما درباره ازدواجی است که هنوز واقع نشده و فرزندانی از آن ازدواج به دنیا نیامده‌اند ولی به هر حال این اختلاف موجب شد که داماد خوب و شایسته ای چون تو نصیب من بشود. انشالله فردا بیشتر گفتگو خواهیم کرد و چون پاسی از شب می گذارد، بهتر است نزد همسرد که در انتظار توست بروی جعفر وزیر در دنباله سخنان خود گفت عجیب این که شمسدین محمد هم درست در همین روز در شهر قاهره با دختری ازدواج کرد. در حالی که نورالدین علی در همین تاریخ در شهر بصرہ داماد وزیر بسره شد. پس از آن که نورالدین علی به بهانه سفر دو سه روزه قاهره را ترک گفت، شمس‌الدین محمد برادر بزرگترش که به اتفاق پادشاه به شکار رفته بود، به خاطر علاقه زیادی شاه به شکار، مدت دو ماه در همان شکارگاه به سر بردند. و پس از بازگشت از شکارگاه، بعد از دو ماه فهمید که برادرش برای همیشه قاهره را ترک گفته است و دریافت که نورالدین علی به خاطر سخنان درشت او از اورنجیده و از قاهره رفته است شمس‌الدین شخصی را مأمور پیدا کردن نورالدین علی به شهر دمشق فرستاد ولی معمول شمس‌الدین پس از جستجوی فراوان اثری از نورالدین علی به دست نیاورد شمس‌الدین میخواست همچنان به جستجوی برادر بپردازد اما درست در همان روز که نورالدین در بسره ازدواج میکرد. او هم با دختر بزرگترین اعیان قاهره زناشویی کرد و پس از نه ماه شمس دین دارای دختری شد و خداوند هم به نوردین علی پسری در شهر بسره عنایت کرد که نامش را بدرالدین حسن گذاشتند. وزیر بسره که دارای نوه شده بود بسیار خوشحال شد و جشن و سرور بزرگی برپا کرد و برای نشان دادن محبت و احترام خود به دامادش حضور سلطان رفت و دامادش را به جای خود معرفی کرد تا سلطان او را به وزارت رساند و خودش به خاطر پیری از کار کنار گیرد و شاهد وزیر شدن داماد خود هم باشد سلطان که به وزیر و هم به شایستگی داماد او اعتقاد داشت درخواست وزیر را پذیرفت. از صبح روز بعد نوردین علی به کار وزارت پرداخت و در کمال توانایی و تدبیر کلیه کارهای روزانه را سر سامان بخشید و در هر مورد دستور سودمند و کارساز صادر کرد متوری که وزیر. از حاشیاری شعور او در حیرت شد و با خود گفت مثل آن است که این جوان تمام عمر خود را در کار وزارت گذرانده است. بعد از چهار سال وزیر با خوشنودی و آسودگی خاطر به درود زندگی گفت زیرا میدانست شخص با کفایتی به جانشینی او به کار وزارت می پردازد. نوردین با احترامات شایسته و قدرشناسی کامل وظایف خود را در مورد خاطر سپاری وزیر و ادای مراسم مذهبی به آورد هنگامی که بدرالدین حسن به سن هفت سالگی رسید، نورالدین علی بهترین معلمین سرخانه را برای او برگزید تا به کودک او سواد و دانش‌های گوناگون موزند و بدرالدین حسن هم استعداد زیادی در آموختن همه دانش‌ها از خود نشان داد و آنچرا که معلمین به او درس می‌دادند با هوشیاری فراوان به خوبی یاد می‌گرفت و در مدت دو سال قرآن را از حفظ داشت و همه آیات را از حفظ مروی کاغذ مینوشت لؤل علی چند معلم خوب دیگر را برای بالا بردن دانش بدرالدین حسن انتخاب کرد و روز به روز بر دانش و معلومات او افزوده می‌گشت به طوری که وقتی به دوازده سالگی رسید دیگر هیچ دانشی نبود که او نداند و از لحاظ زیبایی سیما و اندام متناسب هم بیمانند بود و هر که او را میدید از تحسین و آفرین گفتن بر او خودداری کرد بدرالدین حسن تا دوازده سالگی از دید مردم پنهان بود و در خانه به سر می برد. تا آنکه در این سن پدرش برای دستبوسی سلطان او را نزد سلطان برد مردمی که در طول راه در خیابان و بازار او را دیده بودند برای سلامت او دعاهای خیر می‌کردند و او را می ستودند نورالدین علی در تربیت و آموزش فرزند از هیچ چیز فروگذار نکرد و به هر قیمتی بود بهتری استادان را در سرپرستی و آموزش او به خدمت گرفت و این نوجوان آگاه و با به جایی رسید که میتوانست در سن جوانی با دانش و تدبیر و عقل خود اداره امور کشور را در دست گیرد. در واقع نورالدین علی قصد داشت فرزندش جانشین شایسته لایقی برای او و خدمت به مملکت باشد. نورالدین علی که انسانی وارسته و خداپرست بود، احساس میکرد که آخرین روزهای زندگی او نزدیک شده است و در چنین هنگامی لازم دانست که فرزند خود را فراخواند و به او چنین گفت: پسرم، دنیا ناپایدار است. هیچ چیز در این جهان همیچگی نیست و هرکس روزی خواهد جفت. اینک نوبت رفتن من است تو نیز از این ساعت باید خود را برای چنین روزی آماده کنی بدون آنکه کمتن شکایتی داشته باشی. باید طوری رفتار کرده باشی که هنگام رفتن وجدانت آسوده باشد. به قدری کافی آموزش های دینی به تو داده شده است و آرزومندم که آنها را به کار گیری و فراموش نکنی. اما قبل از هر چیز باید بدانی که من کیستم. من از اهالی کشور مصر هستم، پدر من یعنی پدر بزرگ تو نخست وزیر سلطان مصر بود، من خودم نیز یکی از وزرای او بودم و برادرم که اموی تو می شود و فکر می کنم هنوز زنده باشد و نام شمسدین محمد است، او هم یکی دیگر از وزرا بود، من ناگزیر شدم برادرم را ترک کنم و به این کشور بیایم و با کوشش بسیار خود را به وزارت برسانم، اما اگر یاد داشت های روزانه را که همه‌کنون به تو خواهم سپرد، بخوانی، به همه چیز بهتر پی خواهی برد و یاد داشت های دست نوشته خود را که به صورت کتابی درآمده و همواره با خودش هم می‌کرد به پسرش داد و در نگهداری آن سفارش فراوان کرد تا او هم آن را همیشه با خود نگه دارد، ضمن از او خواست تا در اوقات فراغت آن را با دقت مطالعه کند و این نسخه را به او تذکر داد که تاریخ زن‌شویی من و تاریخی که تو به دنیا آمده ای در این کتاب نوشته شده است، اهمیت این تاریخ را بعدا خواهی فهمید و همیشه آنها را در ذهن خود نگهدار. دین هستن که پدر را در آن دید منقلب شد و اشکق سرازیر گشت و در حالی که دفترچه یادداشتهای پدر را از او می گرفت قول داد که هرگز آن را از خود جدا نخواهد ساخت. در همان لحظه نورالدین علی دچار ضعف و بیحالیه شدید شد به طوری که تصور میرفت از این دنیا رفته است ولی دوباره به حال آمد و گفت پسرم اولین اندرز من به تو آن است که با هر گروهی از مردم معاشرت نکن اگر میخواهی در زندگی خوشحال باشی خیزتندار باش و فکر خود را به آسانی و زود برای هر کس نگو دوم من که با مردم مدارا کن و با خشونت رفتار نکن زیرا سبب رنجش و نفرت آنها خواهد شد باید تصور کنی که تو به دنیا بدهکاری و به این جهت باید در برابر طلب کار خود میانه روی انصاف و از خودگذشتگی نشان دهی. دوم که در برابر سخنان ساززنشا شامیست خاموشی اختیار کن. زیرا بزرگان گفتهاند کسی که خاموشی گزیند، از خطر رهایی یابد. و تو باید در این مورد به خصوص عمل خود را بر این پایه قرار دهی. و حتی یکی از شعرا ی مادرین بار گفته است که سکوت زیور زندگی و نگهدار آن است. و خشم آدمی نباید ماننده طوفان باران همه چیز را تباه سازد. هیچ کس از سخن گفتن کم پشیمان نشده است و حالان که کسانی که سخن زیاد گفتند دچار پشیمانی گشتند چهارامان که از نوشیدن شراب بپرهیز زیرا منشه هرمه بدی ها و گرفتاری ها می باشد که در زندگی میان روی اختیار کن و از مال خود در حد اعتدال استفاده کن و از بلخرجی دوری کن منظوران است که از مال خود به اندازه رفع نیاز خرج کن و به شیوه درست و عاقلانه از آن بهرمند شو. اگر چنین کنی دوستان بسیاری به دست می‌آوری. آوری روددین سخنانش به پایان رسید و به زود زندگی گفت و فرزندش او را با احترامات بسیار و تشریفات لازم به خاک سپرد بدرالدین حسن پس از مرگ پدر به جای یک ماه سوگاری که شیوه زندگی آن روزگار بود دو ماه در خانه ماند و در بروی خود بست و از رفتن به دربار و انجام وظایف وزارت خودداری ورزید. سلطان از بیتنوی بدرالدین گشت و آن را بی‌حرمتی به خود دانست و وزیر جدیدی را به جای بدرالدین حسن برگزید و به او فرمان داد تا به خانه بدرالدین حسن رود و کلیه دارایی و املاک و خانه های متعلق به او را ضبط کند و خودش را هم به حضور سلطان آورد. وزیر جدید هم همراه مأمورین و سایر مقامات درباری راه افتاد. که به خانه بجدین بیایند و فرمان شاه را اجرا کنند اما یکی از قلامان بجدین حسن که در میان جمعیت بود از موضوع آگاه شد و با به هرچی بیشتر خود را به بجدین رسانید و فرمان شاه را به اطلاع او رساند بجدین که سویوار غم پدر بود وقتی این خبر را شنید بسیار اندوکین شد غلام به بجدین گفت ای سرور مهبان هرچه زودتر جان خود را از این محلک نجات دهید بدرالدین حسن که نمیدانست چه کار باید کند از قلام پرسید پول و سکی هم با خود بر ندارم و دست خالی فرار کنم قلام گفت ای سرور من اکنون وزیر جدید و همراهان به اینجا می رسند و شما را دستگیر خواهند کرد بدرالدین با شتاب زدگی، کفش هایش را پوشید و صورت خود را در زیر پارچه لباده‌اش پنهان کرد و از خانه فرار کرد و کسی در این حالت او را نمی‌شناخت از در دیگر قصر خود فرار کرد ولی میدانست به کجا برود اما چون شب نزدیک شد و گورستان عمومی هم نزدیک بود به فکرش رسید که شب را در آرامگاه پدر به ساختمان بزرگ و مفصلی دارد به صبح آورد در همین حال بدرالدین تاجر یهودی را دید که کار او صرافی بود و از خارج شهر به سوی شهر باز میگشت مرد یهودی که بدرالدین را می‌شناخت جلو آمد و سن و احترام کرد و علت سفر او را آن هم یکی و تنها پرسید بدرالدین گفت پدرم را خواب دیدم که با خشونت و خشم فراوان مرا نگاه می کند ناراحت شدم به سر قبر او میروم تا برایش پاتهی بخوانم صداگر یهودی به بدرالدین رو کرد و گفت کالاهایی را که پدرت سفارش داده بود اینک باری هایی است که در دریا به سوی بصرہ میآیند. من پدرت را خوب می شناختم و حاضرم نخوش این کالاهایی را که در بندر بصرہ از کشتی تخلیه کنند خریداری کنم و همکنون به عنوان پیشخرید یک هزار سکه طلا به تو بدهم آنگاه از زیر لباس خود یک کیسه هزار سکهی که سر آن شده بود به بجدین نشان داد بجدین که با دست خالی برای حفظ جان خود از خانه فرار کرده بود این پیش آمد را از جانب خداوند میدانست و بیدرن قبول کرد و بنابر پیشنهاد صداگر یهودی روی تکه کاغذی چنین نوشت به موجب این نوشته این جان در برابر یک هزار سکیه طلا که از یعقوب یهودی گرفته ام، مال و تجاره اولین کشتی را که بندر بسته وارد شود به یعقوب یهودی فروختم، و متعلق به او خواهد بود امضا، بدرالدین حسن بسته ای یهودی این رسید را گرفت و به راه خود به سوی شهر ادامه داد و بدرالدین حسن هم به سوی آرامگاه پدر حرکت کرد به آنجا که رسید با حالت احترام در برابر قبر پدر ایستاد و دستها را به زانو گذاشت و سر فرود آورد و گفت ای پدر اگر بدانی چه بدبختی گریبانگیر فرزندت شده هنوز از قم مرگ تو رها نشده گرفتار خشم پادشاه شدم که با خشونت و بیرحمی مرا از همه چیز محروم ساخته آخر چرا روز گار سر نازازگاری با من دارد بعد دیدین حسن مدتی به همین حالت باقی ماند و بعد سر خود را بر روی سنگ گور پدر تکیه داد و بعد از چند دقیقه به خواب رفت هنوز مدتی از خوابش نگذشته بود که جنی که تمام روز را در آن آرامگاه آسوده بود متوجه بدرالدین شد و از زیبایی او در حیرت فرو رفت همین که جن صورت او را خوب تماشا کرد با خود گفت این باید فرشته‌ای باشد که به زمین فرود آمده تا با زیبایی خود از همه دل ربایی کند و دنیا را در آتش عشق خود بسوزاند جن به آسمان پرواز کرد و اتفاقا یکی از پریان را دید و برای او گفت که جوان زیبایی در آرامگاهی آسوده است و حیف است که او را نبینی پریزاد با شوق تمام به آرامگاه آمد و از زیبایی بدرالدین در حیرت شد و به جن گفت من در تمام عمرم آدمی به این زیبایی ندیدم اما بسیار عجیب است که من الان از قاهره به اینجا آمدم و در آنجا دختر بسیار قشنگی را دیدم که عیناً به زیبایی این جوان بود و این دختر فرزند وزیر پادشاه مصر بود روزی از روزها شاه به وزیر خود میگوید شنیده هم دختر زیبایی داری که تا کنون شوهر اختیار نکرده چنانچه موافق باشی من از او خواستگاری کنم وزیر در کمال ادب پاسخ می دهدد پادشاه من نمیتوانم با این پیشنهاد موافقت کنم زیرا من برادری داشتم به نام نورالدین علی که چندین سال پیش وزیر شما بود و ما دو نفری کار وزارت را برده داشتیم و او به جهتی از اینجا به بچه رفت. و پسری دارد که بسیار زیباست من و برادرم با یک دیگر پیمان بستیم که دختر و پسر خود را به عقد زن وشویی یکدیگر درآورم و با این ترتیب ناگزیرم عهدم را به جا آورم و دخترم را به پسر برادرم بدهم. از برادرم بیخبر بودم تا آنکه چهار روز پیش شنیدم او که وزیر سلطان بسته بوده به درود زندگی گفته است و اینک باید پسر او و دختر من با یکدیگر زن وشویی کنند. سلطان از سخنان وزیر به سختی براشوف و با سخنان درشت و تهدیدآمیز گفت: تو نسبت به من جسارت و بیحرمتی نشان دادی و از قبول من به دامادی خود سر باز زده ای چگونه گستاخی تو را پاسخ دهم؟ دستور می‌دهم دختر تو را به زن‌شوئی زشترین غلامانم درآورند. وزیر که با شنیدن سخنان تهدیدآمیز سلطان ناراحت شده بود، با اندوه فراوان به خانه خود رفت. همان روز ساتان فرمان تا یکی از مهتران او را که مرد زشت صورت و گوش پشت بود و از شدت زشت کسی به او نگاه نمی‌کرد، نزد او آوردند. آنگاه شمس دین محمد را هم احضار کرد و از او رضایت گرفت تا دخترش زن این مرد زشت شود. تدارو که جشن عروسی در همین جا دیده و داماد که در واقع زشت‌ترین مرد ها بود به گرما برفته بود و تمام غلامان اعیان مملکت و قلامان درباریان در انتظار بیرون آمدن مهتر از گرما به بودند تا او را به خانه عروس ببرند. از سوی دیگر خانم ها در انتظار عروس بودند که او را پس از آرایش با لباس عروسی و به تالار بزرگ محل عروسی راهنمایی نمایی کنند. در اینجا پریزاد رو به چنگرد و گفت تا یک دقیقه دیگر مراسمی را که تعریف کردم انجام خواهد شد و من همین الان از قاهره میآیم و شاهد تمام این مراسم بودم. جنب به پریزاد که و گفت من معتقدم که این جوان از آن دختری که تو میگویی زیباتر است ولی در هر حال این جوان و آن دختری که تو تعریف کردی در قاهره دیده ای می برای برای زن و شوهر مناسبی باشند و تصمیم سلطان بسیار ظالمانه است و ما باید مانع جای آن شویم. پریزاد گفت درست میگویی من هم با تو موافقم و باید این جوان را به جای آن مهتر زشت در اتاق عروس بگذاریم. جن ادامه داد که من این زحمت را میکشم و این جوان را تا اتاق عروس در شهر قاهره میبرم و به جای آن غلام رو و گوش پشت در خوابگاه عروس قرار میدهم پریزاد گفت وظیفه داریم که وزیر پدر پیر دختر را شاد سازیم و او را از این بدبختی و دست این داماد زیش و فرومایه که به همچون وچه شایستگی مقام او و دختر او را ندارد رهایی دهیم جن با نرمی و ملایمت مد بجردین حسن را از روی قبل در بلند کرد و بر بردوش و به آسمان رفت و در مدت یک دقیقه فاصله بین بسته و قاهره را پیمود جن بجردین را که همچنان در خواب بود در گرمابه عمومی درست در همان محلی که قرار بود قلام زشت رو با همراهانش به آنجا بیاید که به گرمابه برود گذاشت بجردین حسن در همین لحظه بیدار شد و متوجه کردید در گوشهای دراز کشیده است که آنجا را نمی‌شناسد و نمیدانند در کجای دنیا است و از حیرت میخواست فریاد کند و بپرسد آنجا کجا است در همین هنگام جن با ملایمت دست روی شانه اش و خواهش کرد که خاموش بماند آنگاه مشعلی به دست بزدین داد و گفت تو با سایر اهالی همراه شو تا به تالاری که قرار است جشن عروسی در آن برگزار شود برسی داماد قلا گوش پشت است که تا او را ببینی خواهی شناخت همین که وارد جمعیت شدی در سمت راست آنها حرکت کن و کیسه سکه های زر را در دست بگیر و به نوازندگان و رقصندگان مرتبا پول بده و زمانی که به داخل تالار محل جشن وارد شدی به کنیزکان سیاهی که در اطراف عروس میبینی مشت مشت زر بده هیچ صفه در این امر نکن درست حواس خود را جمع کن و به خاطر بسپار چه میگویم؟ پخش کردن سکه های زر بین مردم اثر سودمندی برایت دارد. تو به همین ترتیب که برایت گفتم رفتار کن و از هیچ کس و هیچ چیز کمترین باکی به خود راه نده، بقیه اش با کمک نیروی مافوق بشری ترتیب داده خواهد شد. سیدین حسن به همان ترتیبی که به او گفته شده بود دفتر کرد و اولین کاری که از مشعل را رو روشن کرد و همراه جمعیت به راه افتاد. همه خیال می‌کردند او هم جزء غلامان درباری بجالدین حسن که به نزدیکی نوازندگان رسیده بود، گاه و بیگاه مشتی سکه طلا بین آنان تقسیم میکرد. و در نهایت سخاوتمندی های بسیاری به هر کدام از آنها رسید و آنها مبهود که این مرد زیبا و سخاوتمند کیست، او را به طور دقیق از نزدیک نگاه کردند و چهره زیبایش را به خاطر سپردند. سرانجان جمعیت نوازندگان مقابل در ورودی قصر شمسدین محمد عموی بجالدین حسن رسیدند. نگهبانان که مسئول برقرار کردن نظم و آرامش بودند، جلوی جمعیت و همچنین بدرگیر حسن را گرفتند. ولی هیئت نوازندگان از ورود به داخل قصر شمس‌الدین محمد خودداری کردند و گفتند تا این جوان را اجازه ورود ندهید، ما هم داخل نخواهیم شد. درست نگاه کنید، این جوان از غلامان نیست، بلکه بزرگزاده‌ای است که از دیار قربت به اینجا آمده و علاقمند است شیوه و روش جشن عروسی ما را ببیند. پس از این سخنان نگهبانان راه را باز کردند و اجازه دادند بدردین حسن هم در میان جماعت وارد تالار عروسی شود او را در سمت راست داماد در کنار عروس نشاندند عروس که بسیار زیبا بود در لباس عروسی بسیار زیباتر می‌نمود. اما اندوه عمیقی در چهره او نمایان بود دلیلش هم روشن بود زیرا داما نشایستگی او را داشت وران زیبند مقام و موقعیت او بود وقتی عروس و داماد را در وسط تالار گذاشته بودند و بانوان عمرا و سران کشور و وزرا و خانواده سلطنتی با زیبرالات زیبا و گرانبها و های بسیار اشرافی در حالی آرایش کامل کرده و عطرهای خوشبو به خود زده بودند و هر کدام یک دون در شمدانی به دست گرفته بودند در دو طرف ایستاده بودند هنگامی که بدالدین وارد تالار شد هنگامی بلکو شد تمام بانوان زیبا چشپا را متوجه ای او کردند و حتی یک نفر هم نتوانست از نگاه کردن به او خودداری کند. همه بانوان مبهوت زیبایی سیما و اندام برازنده و رفتار شاهانه او بودند که با چه وقار و متانت گام بر می داشت وقتی بدرالدین به جای خود نشست، همه میهمانان از سندلی های خود برخواستند و نزدیک او آمدند تا بهتر بتوانند او را ببینند. تقریبا همه از دیدن این جوان زیبا و خوشندام احساس هیجان کردند تفاوت زیبایی و شخصیت و بزرگزادگی بین بدرالدین حسن و غلام بدصورت به قدری زیبا بود و زیاد بود که در میان همه خانم‌ها و کلیه مهمانان زمزمه و همه همه برپا کردند که ما عروس زیبای خود را به این جوان زیبا و شایسته میدهیم نه به این غلام زشت که شایستگی نوکری او را هم ندارد سپس شکایت آنان بالا گرفت و گفتند ما به سلطان اعتراض داریم که چنین بزرگی می‌کند. سلطان نمیتواند زیبایی و زشتی را به هم پیوند دهد در این میان شعارهای تند علیه سلطان داده میشد